دوستای خوبم به درس دیگری از کتاب رود خوش اومدین. ما به نیمه مطالعه و بررسی عهد قدیم رسیدیم و در مورد تاریخ بنی اسرائیل مطالعه می‌کنیم. مخصوصاً درباره زنی به نام رود که به عنوان بخشی از خانواده داوود پادشاه و بالاخره مسیح گردید. این داستان عاشقانه چیزهای زیادی در رابطه با نجاتی که در دسترس من و شما هست به ما یاد میده. لطفاً به درس امروز با دقت گوش کنید این شما و این هم معلم ما یک بار دیگه وقت شکر کتاب مقدساتون رو باز کنید و در درس دیگری از کلام خدا با ما همراه باشید ما به کل کلام خدا اشاره کردیم چون که این دوره مطالعاتی با بررسی کلی کتاب مقدس شروع میشه ما در بررسی هامون به کتاب هشتم کتاب مقدس کتاب روت رسیدیم پس اگر کتاب مقدستون همراهتون هست کتاب روت رو باز کنید و با مطالبی که از این داستان زیبای عاشقانه با شما در میون خواهم گذاشت و گفتیم که تمثیلی از نجات ما هست با ما همراه باشید در جلسه قبلی ما این داستان زیبای کوچک عاشقانه رو شروع کردیم که بهش کتاب روت میگیم کتاب روت در عهد قدیم درست بعد از کتاب داوران قرار گرفته داستان در ایام حکمرانی داوران واقع شده ان دوره تاریک روحانی در تاریخ قوم یهود. من همینطور به کتاب رود داستان نجات هم گفتم. همینطور گفتیم که کتاب رود داستان نجات هم هست. چون که داستانی که در کتاب رود شرح داده شده، تمثیل زیبایی از نجات و رستگاری ما است. نجات ما در کتاب رود در فضای داستانی عاشقانه به تصویر کشیده شده. در کتاب خروج نجات ما در رابطه با رهایی از بردگی مهیب و سخت از مصر به تصویر کشیده شده. همینطور دیدیم که تمثیل نجات و رستگاری ما در کتاب اعداد با سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان به مدت چهل سال ادامه پیدا میکنه. و بالاخره در کتاب یوشه بنی اسرائیل وارد سرزمین کنان شدن که نیل ما به اهداف نجاتمون را به تصویر کشیده. داستان آشقانه در کتاب روت باب یک با داستان از یک خانواده ی گم شده آغاز میشه چونکه چون که در بیت لهم قهدی هست، یک مرد یک زن به همراه دو پسرشان به سرزمین معاب میرند. در سرزمین مواب که شبیه کشور دور در داستان پسر گمشده هست، اوضاع بر اونها خیلی سخت میشه. داستان بر نعومی مادر گمشده شده تمرکز کرده در مواب او شوهر و دو پسرش را از دست میده اما قبل از اینکه اون دو پسر بمیرن اونها با زنان موابی ازدواج کردن. اسم یکی اوررف و اسم دیگری روت هست. رود به شخصیت اصلی این داستان تبدیل میشه. عرفه به معاب برگشت، اما روت تعهد و وفاداری عظیمی رو نسبت به مادر شوهرش نعومی نشان داد. ما بعدها میفهمیم فهمیم به این دلیل بود که او احتمالاً به واسطه ازدواج با شوهر متوفایش محلون ایمان آورده بود. پس این دو زن نعومی و روت به بیتلهم بازگشتند. در پایان باب یک وقتی اونها به بیتلهم برمی گردن، نعومی تصویری از فرزند خدا میشه که به خانه برگشته. این کلامیه که شما بارها در انتهای باب یک میبینید. من برخواهم گشت. درست مثل پسر گمشده تصمیم میگیره که به خانه پدرش برگرده. نعومی تصمیم گرفت که به بیتلهم برگرده و وقتی بازگشت فیض خدا منتظر او بود. خدا به طرق مختلف فیض و محبتش رو نصار نعومی کرد. در این کتاب کوچک روت عروس معابی تصویر کسی هست که عضوی از خانواده خدا نیست. ما میبینیم که خدا فیض و محبتش رو به او به واسطه نجاتش نصار میکنه. وقتی که می بینیم برای رود در بازگشت به بیت با با شوهرش چه اتفاقی میفته، ما تصویر زیبایی از نجات و رسکاری خودمون رو می بینیم. ما گفتیم که خدا فیضش رو نصار او کرد اولا چون در باب یک او برای خوش چینی به مزاره رفت. اون قانونی بود که خدا در لاویان باب نوزده داده بود. آیات 9 و ده که وقتی محصولشون رو برداشت میکردند. اونها نباید خوشه هایی که میافتاد بردارن. اگر محصول خود رو برداشت میکردند گوشه های مزاره و خوشه های افتاده رو رها میکردند اونها هرگز تمامی محصول انگور رو برداشت نمیکردند همه اینها به خاطر افراد فقیر و غریبان چون روت به جا گذاشته میشدند روت این قانون رو میدونست پس او برای تأمین غذا برای خوشه چینی به مزاره رفت. همینطور دیدیم که فیض خدا توسط قانون ولایت یا خیشاوند نزدیک نثار او شد. نعومی مادر شوهر روت خیشاوندی داشت که بسیار ثروتمند بود. اسم او بوعز بود. در آیه سه از باب دو ما میخونیم که وقتی برای خوش چینی به مزاره رفت کتاب مقدس میگه که اتفاق او به قطع زمین بوعز که از خاندان علی ملک بود افتاد. یا همون خیشاوند پدر شوهر متوفایش؟ حالا از شما میپرسم آیا فکر میکنید که این فقط یک اتفاق ساده بود؟ آیا فکر میکنید که این تصادفی بود که روت اتفاقاً به مزرعه اون مرد رفت؟ ما وقتی که به باب یک انجیل متا مراجعه کنیم خواهیم دید که بوعز و روت در شجرنامه ییسای مسیح مسیح های معود قرار دارند. آیا فکر میکنید که خدا میدونست که این دو نفر با هم ازدواج خواهند کرد و در نتیجه مسیحا از نسل اونها به دنیا خواهد آمد؟ آیا فکر می خدا اجازه داد که این به صورت اتفاقی پیش بیاد؟ واضحه که این مشیت الهی بود روت به مزرعه از رفت و بعد در آیه چهار کتاب مقدس میگه اینک بواز از بیتلهم آمده به دروندگان گفت خداوند با شما باد ایشان وی را گفتند خداوند تو را برکت دهد این رابطه عالی ای بین کارگر و کارفرما هست آیا شایسته نیست که ما هم روزمون رو در کارخانه ها و فروشگاه ها این گونه آغاز کنیم؟ خداوند با شما باشد و خداوند به تو برکت دهد. بعد آیه پنج این طور میگه بوعز به نوکر خود که بر دروندگان گماشته بود گفت این دختر از آن کیست؟ اما میدونید این چطور ترجمه میشه؟ چیزی که در واقع بوعز میگه نشون میده که عاشق او شده می میبینه که در مزرعه اش زنی زیبا خوش چینی میکنه اسم روت به معنی زیبایی یا گلبرک است. واضحه که او به طرز شگفتانگیز و باورنکردنی زیبا بود وقتی بو از روت رو دید او قطعا شیفته گردید این همون عشق در نگاه اول بود بو از عاشق او شد پس از نوکرش در مورد این زن سوال کرد و نوکرش همه چیز رو در مورد او گفت که چطور با مردی ابری در معاب ازدواج کرده و حالا او مرده و چطور این وفاداری عظیم رو نسبت به مادر شوهرش نشون داده او این واقعیت رو بابو از در میون گذاشت که از وقتی که با شوهر یهودیش ازدواج کرده به این نتیجه رسیده که ایماندار بشه آیه هشت میگه و بو از بروت گفت دخترم مگر نمی به هیچ کشت زار دیگری برای خوش چینی نرو از اینجا هم مگذر بلکه با کنیزان من در اینجا باش و چشمانت به زمینی که می نگران باشد. و در عقب ایشان برو آیا جوانان را حکم نکردم که تو را لمس نکنند و اگر تشنه باشی نزد ظروف ایشان برو و از آن چه جوانان مینوشند بنوش بو از برای رود کاملا روشن میکنه که به او علاقمند شده حالا کمی اوضاع فرق کرده پاسخ او را در آیه ده میبینیم که میگه پس به روی در افتاده او را تا به زمین تعظیم کرد و به او گفت برای چه در نظر تو التفات یافتم که به من توجه نمودی حالان که قریب هستم، اینجا کلمه زیبایی در کتاب مقدس هست، کلمه فیز، فیز به این معنیه، لطف و برکت خداوند که ما شایسته اش نیستیم. روت به از میگه من زن یهودی نیستم، من مثل یکی از کنیزان تو نیستم، برای چه در نظر تو التفات یافتم؟ چرا این فیز و لطف رو در حق من نشون میدی؟ بو از با گفتن این که من درسم را از حفظم به او پاسخ میده در آیه 11 میگه از هر آنچه بعد از مردن شوهرت به مادر شوهر خود کردی اطلاع تمام به من رسیده است و چگونه پدر و مادر و زمین ولادت خود را ترک کرده نزد قومی که پیشتر ندانسته بودی آمدی خداوند عمل تو را جزا دهد و از جانب یهوه خدای اسرائیل که در زیر بالهایش پناه بردی اجر کامل به تو برسد حالا این مهمه که در زیر بالهای چه کسی او پناه آورده ببینید روت یک ایماندار شده بود و بو از این رو میدونست وقتی بو از تمایلش رو برای ابراز لطف به او نشان داد او گفت ای آقایم در نظر تو التفاط بیابم زیرا که مرا تسلی دادی به عبارت دیگه او گفت بسیار خوب من این رو میپذیرم بعد در وقت غذا بو از گفت بیا و از سفره من بخور و لقمه خود را در شیره فرو بر ما میخونیم که او در اولین روز کاری بابو از ناهار میخوره و کلام خدا میگه او خورد و سیر شد وقتی شما کسی رو دوست دارید این کاریه که می خواهید بکنید هرچی دارید میخواهید به او بدید او از آشکار عاشق شده بود وقتی اولین روز کاری روت به پایان رسید آنچه را که جمع کرده بود به همراه خود برد وقتی بو از خوردن غذاش را با او تمام کرد جوانان خود را امر کرده گفت بگذارید در میان بافه ها هم خوش چینی نماید و او را زجر من مایید و نیز از دسته ها کشیده برایش بگذارید تا برچیند و او را اتاب مکنید قانون کتاب مقدس میگه اگر چیزی سهوًن از دستتون افتاد اون را بر ندارید و همونجا رها کنید اما بو از میگه هر وقت او رو پشت سرتون میبینید هر چیزی که توی دستتون هست برای او بیاندازید بو واقعا واقعاً به رود علاقمند شده پس وقتی رود به خانه رفت او زنبیلی پر با مقدار زیادی گندم داشت وقتی مادر شوهرش اینو میبینه میگه امروز کجا خوش چینی کردی و کجا کار کردی؟ و رود خیلی ساده میگه مزرعه مردی به نام بو از و نعومی بسیار حیجان زده شد و گفت او از جانب خداوند مبارک با زیرا که احسان را بر زندگان و مردگان ترک ننموده است. این شخص خویش ما و از ولیهای ماست. در واقع نعومی میگفت رود ما توی خانه بزرگ سفیدی بر بالای تپه زندگی خواهیم کرد میدونی دارم چی میگم؟ بو از مرد ثروتمندیه او خیشاوند شوهر من یا پدر شوهر تو هست مطمئنم که نعومی اون قانون و 25 رو به رود گفته بود و این که رود حق داره نزد هر کدوم از خیشاوندان شوهر متوفاش بره و از او بخواد که باهاش ازدواج کنند البته رود حالا اینو میدونست و نعومی گفت ای دخترم خوب است که با کنیزان او بیرون روی و تو رو در دیگر نیابند. فقط همونجا کار کن. آخرین آیه باب دو میگه پس با کنیزان بو از برای خوش چینی میمان تا دروی جو و دروی گندم تمام شد و با مادر شوهرش سکونت داشت. این به نظر عجیب میاد چون این یعنی شش ماه تمام هر روز پشت سر هم او برای خوش چینی به مزرعه بو از میرفت. میتونید تصور کنید که اونها هر روز با هم نهار میخوردن. شاید بو از او رو به خانه میرسوند. او از هر کاری که از دستش برمیومد برای محبت به او انجام میداد، با فرو کردن لغمهش در شیره و به هر نحو ای به او نشون میداد که عاشق او هست و روت وفاداران هر روز پشت سر هم میومد، اما با مادر شوهرش زندگی می کرد. حالا میتونید فکر کنید که نعومی بیتابی میکرد. آیه سه با این شروع میشه که نعومی مادر شوهرش به او میگه ای دختر من آیا برای تو راحت نجویم تا برایت نیکو باشد می دونید معنی راحت چیه؟ راحت یعنی یک شوهر که برای تو خوب باشه و الان آیا بو از که تو با کنیزانش بودی خیش ما نیست؟ آیا من به اون قانون خیشاوند نجات دهنده با تو صحبت نکردم؟ نامی به او گفت پس خیشتن را قسل کرده تدهین کن و رخت خود را پوشیده به خرمن برو اونها بعد از خرمنکوبی زیافت بزرگی به پا می کردن نامی گفت خیشتن را گست کرده تطهین کن و رخت خود را پوشیده به خرمن برو اما خود را به آن مرد نشناسان تا از خوردن و نوشیدن فارغ شود و چون او بخوابد جای خوابیدنش را نشان کن و رفته پاهای او را بگشا و بخواب و او تو را خواهد گفت که چه باید بکنی اونها اغلب برای محافظت از محصول اونجا می نامی ادامه داد بعد در نیمه های شب برو و خود را به آن مرد نشان بده و مقصودت را به او بگو ببینید این نه تنها یک داستان نجات هست یک داستان وارونه نیز هست در اون فرهنگ بو از نمیتونست از روت خاصکاری کنه روت باید از بو از خاصکاری میکرد شوهر متوفای او و پدر شوهر او خیشاوندان زیادی داشتند شاید خیلی از اونها میخواستند با او ازدواج کنند اما براساس تعالیم این قانون روت بیوه باید میرفت و به یکی از اونها میگفت که من می‌خواهم تو ولی من باشی کاری که او در باب سه انجام داد کاملا به جا بود این یک خاصکاری برای ازدواج بود بر اساس قانون خدا ازدواج میتونست اون شب انجام برسه واضحه که وقتی با رو میخونیم ازدواج صورت نمیگیره اما خاصکاری برای ازدواج بر حسب قانون خدا برگزار میشه وقتی روت نزد بوعز رفت هیچ کار ناشایستی انجام نداد میخونیم که نیمه شب بود و بسیار تاریک و روت رفت و نزد پاهای بو از دراز کشید بو از عملا ترسید وقتی که فهمید زنی اونجاست گفت تو کی هستی؟ روت پاسخ داد من کنیز تو روت هستم پس دامن خود را بر کنیز خیش بگستراند زیرا که تو ولی هستی اون مراسم خاسکاری برای ازدواج بود و ازدواج میتونست در همون محل خرمنگاه طبق قانون خدا انجام بشه بو از گفت ای دختر من از جانب خداوند مبارک باش زیرا که در عقب جوانان چه فقیر و چه غنی نرفتی و حالی دختر من مترس هر آنچه به من گفتی برایت خواهم کرد زیرا که تمام شهر قوم من تو را زن نیکو می‌دانند واضح که بوعز مرد مسنی بوده بعد بوعز میگه اما روت من مشکل کوچکی دارم چون ولی نزدیکتر از من هست و او اولویت داره این بسیار جالبه که بوعز به روت میگه برو خانه نزد مادر شوهرت او در چادر روت به اندازه 6 کیل جو میریزه و او رو, رو روانه میکنه و میگه برو و در خانه مادر شوهرت منتظر من باش. همونطور که میبینیم بو از دلیل خوبی برای دادن این نصیحت به روت داشت. پس روت به خانه نزد نعومی رفت. چون بر اساس قانون یهودی زن باید از مرد خاصکاری میکرد اما مرد باید میرفت و کارهای شرعی را انجام میداد. در ابتدای باب چهار این کتاب ما میبینیم که بو از ترتیب یک جلسه دادگاه رو میده که به ازدواجش جنبه قانونی بده صبح زود همون روزی که روت از او خاصکاری کرده بود بو از جلسه دادگاه رو ترتیب داده بود. بو از ولی رو که به روت نزدیک تر بود دید به او گفت که ای فلان، به اینجا برگشته بنشین و میخونیم که بو از ده نفر از مردانی رو که در قوانین مذهبی یهود به اونها مشایخ میگفتن جمع کرد. بو از در جمع این مردان به این ولی گفت علی ملک فامیلمون یادت میاد؟ او به معاب رفت و یادت میاد که در معاب مرد. نعومی از بلاد معاب برگشته قطع زمینی را که از برادر ما علی ملک بود میفروشد. و من مسلحت دیدم که تو را اطلاع داده بگویم که اون را به حضور این مجلس و مشایخ قوم من بخر. پس اگر انفکاک میکنی بکن و اگر انفکاک نمیکنی مرا خبر بده تا بدانم زیرا غیر از تو کسی نیست که انفکاک کند. و من بعد از تو هستم او گفت من انفکاک میکنم بو از گفت در روزی که زمین را از دست نعومی میخری از روت معابیه زن متوفا نیز باید خرید تا نام متوفا را بر میراسش برانگیزانی فکر می کنم که بو طوری وانمود کرده که روت یک زن پیر معابی هست به این دلیل که بو از به روت گفت به خانه نزد مادر شوهرت برو و منتظر من بمان بو نمی نمیخواست که این مرد روت رو ببینه چون اگر این مرد روت رو میدید احتمالا منظور بو به آسانی انجام نمیشد وقتی روت به خانه نزد نعومی رفت آیه 16 باب 3 میگه نعومی گفت ای دختر من بر تو چه گذشت پس او را از هر آن مرد باوی کرده بود خبر داد و نعومی گفت ای دخترم آرام بنشین تا بدانی که این امر چگونه واقع خواهد شد زیرا که این مرد تا این کار را امروز تمام نکند آرام نخواهد گرفت منظور نعومی این بود که بو از هر کاری که لازمه در جلسه مشایخ انجام خواهد داد نعومی گفت باور کن و آرام بنشین تا بو از کارها رو انجام بده و بو از انجام داد وقتی بوعز به آن مرد که خیشاوند نزدیکتر بود گفت باید با روت معابی ازدواج کنی و مرد گفت نمیتوانم برای خود انفکاک کنم مبادا میراث خود را فاسد کنم پس تو حق انفکاک مرا بر ذمه خود بگیر زیرا نمیتوانم انفکاک کنم بعد بوعز به اون مشایخ میگه شما امروز شاهد باشید که تمامی مایملک علی ملک و تمامی مایملک کلیون و محلون را از دست نعومی خریدم و هم روت معابیه زن محلون را به زنی خود خریدم تا نام متوفا را بر میراثش برانگیزانم همونطور که گفتیم این تصویر زیبایی از نجات هست. باز خرید کردن به معنی باز پس گرفتن و برگرداندن هست. در کتاب مکاشفه تصویر زیبایی دیگری از نجات هست. در باب پنج مکاشفه همه چیز بر حول محور تخت در آسمان می‌چرخه ما گریه زیادی رو اطراف اون تخت می‌بینیم آیه چهار باب پنج مکاشفه میگه من زار زار می‌گریستم زیرا هیچ کس یافت نشد که سزاوار گشودن تومار یا نظر کردن در آن باشد داستان در مکاشفه باب پنج عملا از توماری صحبت می‌کنه که با هفت مهر ممهور شده مشکل اینه که کسی پیدا نمیشه که مهرها رو بشکنه و تومار رو باز کنه الهی دانان معتقدند که تومار در مکاشفه مانند تومار کوچکی هست که در اون بدهیهای زنی ثبت شده که نیاز به بازخرید داره یادتونه که ولی نباید قبل از اینکه تمایلش رو برای بازخرید کردن و نجات اون زن نشون بده اون تومار رو باز کنه و بدهیهای زن رو ببینه هیچ راهی نداره که بدون این بازخرید به چه بهایی برای او تمام خواهد شد گریه کردن در آسمان به این دلیل که کسی شایسته نیست و یا مایل نیست که مهر اون تومار رو بشکنه و ببینه که بهای نجات انسان چه مقدار هست. بعد خبر خوش اعلام شد. صحبت از نبوت نجات به واسطه ی ایسای مسیح هست. اون میگه گریان ما باش. اینک آن شیر قبیله یهودا آن ریشه داوود، قالب آمده است تا تومار و آن هفت مهر را بگشاید. آنگاه بر ری دیدم که گویی زب شده باشد. ایستاده بر مرکز تخت. و محصور میان آن چهار موجود زنده و پیران، هفت شاخ داشت و هفت چشم که هفت روح خدایند بعد خبر خوش اعلام شد. صحبت از نبوت نجات به واسطه ی ایسای مسیح است. اون میگه گریان مباش، اینکان شیر قبیله یهودا، آن ریشه داود، قالب آمده است تا تومار و آن هفت مهر را بگشاید. آنگاه بر ری دیدم که گویی زب شده باشد، ایستاده بر مرکز تخت. او پیش آمد و تومار را از دست راست آن تخت نشین گرفت پس از آن که تومار را گرفت آن چهار موجود زنده و آن بیست و چهار پیر پیش پای بر برخاک افتادند و سرودی تازه به دینسان میخوندن تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن چرا که زب شدی و با خون خود مردم را از هر تایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی نجاتی که در باب پنج مکاشفه داده شده. در کتاب روت به تصویر کشیده شده همانطور که در باب چهار کتاب روت شرح داده شده وقتی بو از به نزد مشایخ رفت او از نظر قانونی روت رو بازخرید کرد بو از روت رو به دو طریق بازخرید کرد اولاً تمامی قرض او رو پرداخت و از اون نظر او را بازخرید کرد بعد بو از رابطه ای رو با رود ایجاد کرد با او ازدواج کرد به واسطه ازدواج با روت بو از او رو به خانواده خدا بازگردان نجات رود دو چیز را برای ما در نجات خودمون به تصویر میکشه نجات ما بر مبنای مرگ و قیام عیسی مسیح بود معنی و اهمیت مرگ عیسی در رابطه با نجات ما چیه اهمیت مرگ عیسی مسیح اینه مرگ عیسی مسیح بهایی بود که باید برای بازگرداندن ما به خانواده خدا پرداخت میشد در ابتدا خدا با انسان در خانواده الهی در رابطه الهی بودن. کتاب پیدایش به ما میگه که خدا انسان رو موجودی با حق انتخاب آفرید و, و انسان انتخاب کرد همونطور که امروز انتخاب میکنه از خدا برگرده و باب میل خودش رفتار کنه که رابطه خدا به انسان رو قطع میکنه بلافاصله خدا میره که انسان رو بازخرید کنه و او رو به رابطه گذشته برگردونه کتاب مقدس این رو بازخرید میخونه خدا چطور انسان رو بازخرید میکنه خدا انسان رو به وسیله مرگ پسرش روی صلیب بازخرید میکنه پتروس میگه این چیزهای فناپذیر مانند طلا و نقره نیست که ما رو نجات میده وقتی پتروس اینو میگه هر یهودی میدونه که منظور او از نجات یافته چیست اون درست مثل قانون ولی یا خیشاوند نزدیک است پتروس میگه این طلا و نقره نبود بلکه خون ارزشمند عیسی مسیح بود که ما رو دوباره به سوی خدا آورد اما این فقط نیمی از نجات هست ازدواج بو از باروت بود دوم نجات رو به تصویر میکشه. ایسای مسیح زنده هست و در سرتاسر کره زمین حضور داره. ایسای مسیح از مردگان برخاسته و در قلب ما رو میکوبه. عیسی می که ما در رو باز کنیم و او رو دعوت کنیم که وارد بشه. ایسای قیام کرده میخواد که با ما رابطه داشته باشه. اون رابطه به عنوان رابطه محبت آمیز توصیف شده. ایسای مسیح داماد هست و ما به عنوان کلیسا عروس هستیم ما با او نامزد شدیم به عبارت دیگه در نجات ما چیزی هست که باید باور کنیم و کسی هست که باید او رو بپذیریم این بعد دوم نجات هست و در کتاب رود برای ما به تصویر کشیده شده رود تصویری از من و شماست وقتی ما به واسطه ایمان به عیسی مسیح به حضور خدا می آییم امید نجات ما چیه امید ما به فیض خدا هست. فیض خدا در قوانین خدا که در کتاب رود به کار رفته به طور تمثیل آمده قوانین خدا که نجات ما رو بیان می‌کنه چیزیه که ما به اون مجده مرگ و قیام عیسی مسیح می‌گیم. عیسی مسیح ما رو به وسیله مرگش بازگرداند و با قیامش و رابطه‌ای که با ما برقرار کرد وقتی که او رو به قلب هامون دعوت کردیم ما رو به سوی خدا برگردوند و به ما این قدرت رو داد که به عنوان فرزندان خدا زندگی کنیم. حقیقت زیبای دیگری در کتاب روت هست. اون حقیقت چیزیه که من بهش داستان وارو نمی‌گم. گفتیم که کتاب روت داستانی از نجات بود و داستانی وارونه بود معمولا در فرهنگ ما مرد زن رو انتخاب میکنه اما به خاطر این قوانین باز خرید یا نجات گفتیم که روت باید از بواز خاصکاری میکرد او باید طبق باب سه کتاب روت به بواز میگفت من میخوام که تو ولی من باشی همون چیز در نجات ما نیز حقیقت داره تنها کاری که بواز باید میکرد این بود که به اون نشون بده که او رو دوست داره و میخواد که او رو نجات بده اما روت باید میگفت من تو رو انتخاب می کنم بو از نمی تونست چنین اصاری بکنه ما گفتیم که عیسی مسیح بر در قلب های ما ایستاده او در میزنه و در میزنه و اونجا منتظر میشه و منتظر میشه دکتر جان آر دبلیو میگه بیشتر کسانی که اظهار می کنند ایمان دارن در رابطشون با عیسی مسیح در اینجا قرار دارند عیسی بر در قلب اونها ایستاده و میکوبه و اونها هر کاری میکنند به جز کاری که عیسی مسیح می گه و اونها هر کاری می کنند به جز کاری که عیسی مسیح میگه بیشتر ایمانداران دعاهاشون رو از سوراخ کلید با عیسی در میون میذارن بیشتر ایمانداران از زیر در برای عیسی پول پرت میکنن تنها کاری که عیسی از اونها میخواد اینه که در رو باز و از خداوند من ناجیشون بخوند که داخل بیاد و زندگی اونها رو در دست بگیره و با اونها بمونه و دوستی کنه اما اکثر ایمانداران این کار رو نمیکنن و سعی میکنند که از سوراخ کلید با عیسی حرف بزنن ما باید به عیسی بگیم من میخوام که تو ولی من باشی من میخوام که به وسیله مرگت منو بازخرید کنی و میخوام که منو به رابطهی با خودت برگردونی به این معنی که باید به عیسی بگیم تو رو دیدم که اونجا ایستادی. در واقع صبورانه اونجا ایستادی در میزنی و تمایلت رو برای نجات من و داخل شدن و ایجاد رابطه با من اظهار میکنی درست مثل رابطه ازدواجی سمیمی اما من باید به خواستگاری کردن تو با باز کردن در زندگیم پاسخ بدم باید از تو بخوام ولی من بشی اگه تا حالا این کارو نکردید بگید خداوندی سای مسیح از تو میخوام که همین الان این کار رو بکنی منو به واسطه خون خودت باز خرید کن و به رابطهی که میخواهی با من داشته باشی برگردون کاربرد دیگر کتاب روت مربوط به نومی هست نومی زن زیبایی بود از بعضی لحاظ نعومی منو به یاد مارتا در عهد جدید میندازه. نعومی شخصی اهل عمل بوده. یادتونه که در باب اول نعومی خدا رو بابت تمامی شرایط زندگیش سرزنش میکنه تمامی چیزهایی که برای او در سرزمین دور اتفاق افتاده. در باب سوم کتاب رود به اعتقاد من ناعومی تصویری از کلیسا یا مؤسساتی است که انسانها رو از نیازشون به نجات آگاه میکنن یک نفر باید در مورد نجات با مردم صحبت کنه. مردم اگر کسی به اونها در مورد نجات حرف نزنند چطور آگاه خواهند شد مگر که کسی توضیح بده کسانی که موعظه میکنند نمیتونند به اونها بگن مگر اینکه کسی اونها رو فرستاده باشه کسی باید مژده نجات ما رو به اونها بگه نعومی تصویری از چنین شخصیه. این نعومی بود که روت رو از قانون ولایت و نجات آگاه کرد که فیض و محبت خدا رو برای روت به ارماغان آورد این او بود که به روت گفت رود تو قوانین رو میدونی، حالا به خرمنگاه برو و اون قانون رو به کار بگیر. رود هر کاری که نعومی به او گفت انجام داد. او از بو از خواست که ولی او بشه. بنابراین نعومی یک کلیسا رو و بخشی از کلیسا رو برای ما به تصویر میکشه که نقشه رساندن مجده نجات به دنیا رو ایفا میکنه کنه. کلمه زیبای فیض مفهوم دیگری رو در کتاب رود به نمایش میذاره که باید با دقت به اون توجه کنیم. روت رو سالها بعد از ازدواجش با از تصور کنید، او پسر کوچکی به دنیا آورده به نام اوبید و عبید پدر پدربزرگ داوود شده و به این وسیله اوبید در شجر نامه مسیح قرار گرفته. تصور کنید روت در یک فروشگاه بزرگ خرید میکنه و یه دفعه با گروهی از دروگران که شش ماه در مزرعه از با اونها کار می‌کرده روبرو میشه. اونا میگن اوه روت تو هستی و این ابید کوچکه؟ بعد میگن اوه روت ما همیشه دونستیم که تو به اینجا میرسی تو واقعا با طرز برخوردت نقشت رو خوب بازی کردی شش ماه تمام سخت تلاش کردی که تمام کارها رو درست انجام بدی به این دلیلی که امروز به اینجا رسیدی تو واقعا دختر باهوشی هستی روت آیا فکر می کنید که روت این تعارف‌ها رو قبول میکنه؟ روت احتمالا گفته گوش کنید تنها دلیلی که من به اینجا رسیدم اینه که کسی منو خیلی دوست داشت اونقدر که میراث خودش رو با باز خرید کردن من و بازگرداندن من به خانواده الهی به خطر انداخت من همه چیز رو مدیون محبت بوعز و محبت خدا که توسط قانون بازخریدش نشان داده هستم حالا تصور کنید که ما توی آسمان باشیم و با گروهی از دوستان زمینیمون برخورد کنیم که به ما بگن که اوه ما میدونستیم که تو به اینجا میرسی چون که تو خیلی باهوش هستی ما میدونستیم که حکمت و ذکاوت داری که بتونی ترتیب این کار رو بدی ما میدونیم که تو اونقدر خوب بودی که با اعمال خودت به اینجا برسی. آیا فکر می کنید من و شما بتونیم این اسارات رو بپذیریم؟ البته نه. هیچ کس. نه من و نه شما نمیتونیم به جز با فیض ناجی مهربونمون با آسمون برسیم. کاربرد کتاب روت برای نجات ما اینه. روت با فیض خدا نجات یافت. روت با محبت خدا و اون محبت و فیضی که از طریق کلام خدا بیان شده نجات یافت. یا از طریق قوانین خدا به این دلیلی که در پایان کتاب روت به اون جایگاه رسید و تنها راهی که من و شما روزی در آسمان خواهیم بود به همون دلیل هست محبت خدا و فیض خدا و بازخرید کردن خدا که از طریق کلام خدا و قوانین خدا به ما عرضه شده و بالاخره بزرگترین چالش کتاب روت اینه آیا شما نجات یافتید؟ آیا به واسطه خون عیسی مسیح و ایمان شخصیتون به خون نجات دهنده مسیح به سمت خدا بازگردانده شدید آیا به خاطر رابطه ای که با ایسای مسیح برقرار کردید به سوی خدا بازگردانده شدید؟ آیا از ایسای مسیح خواستید که ولی و ناجی شما بشه؟ ایسای مسیح وقتی انسان شد ولی ما گردید. ایسای مسیح بر در قلبهای ما ایستاده او میخواد ولی ما باشه. به هر حال ما باید بخواهیم او ولی ما باشه. این از تمامی چالش‌ها و کاربورت های داستان زیبای آشقانه مهمتر هست. کتاب روت نجات ما رو به تصویر میکشه کاربرد کتاب روت اینه آیا نجات یافتید آیا تا حالا از عیسی مسیح خواستید که ناجی شما بشه اگر نخواستید امروز نجات عیسی مسیح رو بپذیرید در قلبتون رو باز کنید و از او دعوت کنید وارد بشه تا ولی و ناجی شما بشه عزیزان چه داستان زیبایی چه حقیقت حیرت انگیزی که خدا میخواد ولی ما بشه با این حال ما رو تحت فشار نمیذاره. اون میخواد ما بدونیم که به ما اهمیت میده و ما رو دوست داره. اگر قبلا اون رو به عنوان ناجی خودپذیرفتین ترتیبی بدین که این داستان عاشقانه رو با دیگران هم درمیون بذارین. چون که خدا نمیخواد کسی حلاک بشه بلکه میخواد همه با ایمان توبه کنن. ترتیبی بدین که در برنامه بعدی همراه ما باشین و از دوستی هم دعوت کنین که در مطالعه کلام خدا به ما بپیونده.